Up, oh up, وانەی فارسی بناوی کردیگاری دولووان و به جوگران خوشویستو لگرانی برنامه یوانی فارسی سلام و رزد من هیا لخزمت همو لایکتن باوکی باو کی هاورکی محمد نخوشو ده هوه بوچارستری بیت بو تاران. باوکو دایکو خوشکی هاورکی محمد امرو بفروکا لشیرازا و دین بوترانو تاران و کراکایان لتاران هوتیلی بو محمد لتران چند اشنایکیان هیا و بنیازن لو ماودا که لتارانن سریکی اوانیش بدن. فهما كان لقد قال بality لجالات اليوم وهم على المستخ resol prescribed. ومن بعد الان بالچر المفيدونان لا يوجد التوانيات الكمية الو، الو، الو جان، جان، گین رامین جان، رامین جان، رامین گین ما خوب هستیم، ما خوب هستیم اما باشین بد نیستم، بعد نیستم نیم. تو چطوری، تو چطوری، تو چونی الان، الان استا نزدیک، نزدیک، نزدیک کی، کی، کی شما میرسید، شما میرسید اوا دگن ما ميرسيم؟ ما ميرسيم؟ إمادا جين. نيم، نيم، نيو. ساعة، ساعة، كادجمير. ديجر، ديجر، ديكا. نيم ساعة، نيم ساعة، نيو برای برای بو شما شما اوا هتل هتل هتل من من من جا رزرو کردم جا رزرو کردم چیکام گرتوا هتل آزادی هتل آزادی هتل آزادی آدرس آدرس نو نشان شما میدونید شما میدونید اوا دزانن ما میدونیم ما میدونیم ا ما دزانین من میروم من میروم من دارم من میبینم من میبینم من ده بینم حتما حتما بدرنیای یو پسرم پسرم کوراکم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ یسته که وشنی في فر بون باب زنی رامین دایکی دلنشی. آلو، میجان سلام مادر حالتان چطور است؟ سلام مادر. حالتان چطور است ؟ ما خوب هستیم تو چطوری ؟ ما خوب هستیم؟ تو چطوری؟ چطوری؟بد نیستم. الان شما کجا هستید؟ بعد نیستم؟ الان شما کجا هستید؟ نزدیک تهران هستیم. ما نزدیک تهران هستیم. کی به تهران می رسید. کی به تهران می رسید. فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران می رسیم. فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران می رسیم. من برای شما، در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را می دانید؟ من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را می دانید؟ بله می دانم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم بله میدانم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوب است من هم به هتل می آیم شما را آنجا می بینم خوب است من هم به هتل می آیم شما را آنجا می بینم حتما، پسرم خدا حافظ حتما پسرم خداحافظ خدا حافظ خدا حافظ, خدا حافظ. برزان استا جاریکی دیکه جوی باوتوی جاکراد گرینو ورگیرانی کردی کشی دبیستین الو الو الو سلام رامن جان الو سلام رامینگیان سلام مادر حالتان چطور است؟ سلام دایا چونی؟ ما خوب هستیم تو چطوری؟ اما باشین تو چونی؟ بعد نیستم الان شما کجا هستید؟ خرب نیم استا ایوالکوین ما نزدیک تهران هستیم. اما لنزیک ترنیم. کی به تهران می رسید؟ کی دگنا ترن؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران می رسیم. نیو نیوکاچ میریدی که دگنا ترن. من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را می دانید من جگم له هتل بگرتون هتل نشانی هتل هتلکت دازنن؟ بله میدانیم ما مستقیم به هتل آزادی میآییم؟ بله دیزنین اما یک راست دینه هتل آزادی خوب است من هم به هتل میآیم شما را آنجا می بینم باشه. ام نجدم با هتل. اوله هتل دبین موه. حتما پسرم خدا حافظ. باشه کرم خواه حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. برزان بجاری کی دیگه اوتویژن نیوان رامینو دایکی به فارسی جو رادگرین الو الو سلام رامین جان سلام مادر حالتان چطور است ما خوب هستیم تو چطوری بعد نیستم الان شما کجا هستید ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران می فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران میرسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را میدانید؟ بله میدانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم. خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم. پسرم خدا حافظ خدا حافظ رامین تلفونک دا د نیو جلوبرګکی د ګوره او دوه انجامدان کارکانی د چي بو هوټل بو بیسټنی درېجه به سره تاکه حورم من بل برنامه د هاتوې وانه